نوار شماری 24 ای از سری نوارهای رادیو ایران شاعران قصه میگویند، قسمت اول ویس و رامین تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای سازمان ملی رفاه نابینایان ایران تهران به تاریخ دهم اسفند ماه 1355 شمسی تکثیر کنندگان مراد قرحبولی عبدالله قفاری شاعران قرحبولی عبدالله استاندار صورت هر قصه‌ای خردبینان را ذمعنین هستی و سو رامین اول ما ادب را با جلوه گلهای دیگری میاراییم و با داستان شیوای ویسرامین اثر دلنشین فخرالدین اسعد گرگانی سخنسرای نامی قرن پنجم هجری شور و حال میبخشیم مصنوی ویسرامین یکی از منظومه های است که در عواست قرن پنجم هجری سرود شده و از همان روزگار به شهرت رسیده و در شمار آثار بدی ادبیات پارسی قرار گرفته است وقایع این داستان شورنگیز به اواخر دوره اشکانیان نسبت داده شده و از آن سبب که نماینده اوضاع اجتماعی و آداب و سنن و طرز زندگی و اندیشه ایرانیان در دوران باستان است متزمن اهمیت فراوان است در افسانه های روزگاران کهان آمده است که در سرزمین باستانی ایران شهریاری میزیست که شاه موبدش مینامیدند بهارگاه بود که به فرمان پادشاه مجلس بزمی خسروبان آراستند. بسی شاهان و بزرگان برای دیدار شاه موبد از هر سو روی آوردند و بسی پریچهرگان و سمنبویان به نظاره بزم شهریار پرداختند. یافتم اندر سمرها ز گفت راویان اندر خبرها که بودند در زمان شهر یاری به شاهی کامکاری بخت یاری همه شاهان مرو را بنده بودند ز بحر او به گیتی زنده بودند چه خرم بودند در بهاران به جشن در سراسر نام دارن. زهر شهری سپهداری و شاهی زهر مرزی پریروی و ماهی گزیده هر چه در ایران بزرگان از آذربایگان وزری و گرگان همیدون از خراسان و کهستان ز شیراز و صفاهان و دهستان نشسته در میان مهتران شاه چنان کن در میان اختران ما سر شاهان گیتی شاه موبک کشاهان شاهان چون ستاره ماه موبت به سربر افسر کشور گشایان به تنبر زیور محتر خدایان به پیشان نشسته جنگجویان جویان زبالا ایستاده ماه رویان همی بارید گلبرگ از درختان چو باران درم بر نیک بختان یک سو مطربان نالنده بر مل دگر سو بلبلان نالنده بر گل نکوتر کرده می نوشین لبان را چه خوشتر کرده بلبل مطخبان را به روی بر دو گونه لاله بطان را از نکوی و از پیاله بر اینسان بود یک هفته شنشاه به شادی با بزرگان گاه و بیگاه شاه موبد از میان پریچهرگان مجلس دل در گروه مهر شهرون حاد که دلارابتی از خطه ماه بود غمصم که انان شکیبایی از کف بداد و برام شد که سوز دل با وی در میان نهاد آنگاه آن ماهرو را به گوشه‌ای فرا خاند و آرزوی همسری وی کرد اما شهرو پاسخش گفت که نمیتواند چنین کند ولی اگر این بار فرزند دختری بیاورد او را به همسری شاه موبد برخواهد گزید پری رویان گیتی هامواره شده بر بزمگاه او نظاره چو شهرو ماه دخت از ماه آباد چو آذربایگانی سر و آزاد زگرگان آب نوش ماه پیکر همیدون از دهستان ناز دلبر همیدون ناز و آزرگون و گلگون به رخ چون برف و بروی ریخته خون زچندان دلبران و دلنوازان به رنگ و خوی تاووسان و بازان نکوتر بود و خوشتر شهر بانو به چشم و لب روان را درد و دارو لبان از شکر و دندانز گوهر سخن چون گوهر آلوده به شکر چنان آمد که روزی شاه شاهان که خاندندش همی موبت منیکان بگیدان سیمتن سر و روان را بوت خندان و ماه بانوان را به تنهایی مرو را پیش خود خاند به سان ماه نو برگاه بنچاند به ناز و خنده و بازی و خوشی بهدو گفت ای همه خوبی و کشی بگیتی کام رندن با تو نیکوست تو با دربرم یا جفت یا دوست که من تارم تو را با جان برابر کنم در دست تو شاهی سراسر چو از شاه این سخن بشنید شهرو به نازو را جوابی داد نیکو به گفت ای جهانی کامکاری چرا بر من همی افسوس داری نه آنم من که یار و شوی جویم کجا من نه سزای یار و شویم نگویی چون کنم با شوی پیوند از آن پس که از من آمد چند فرزند از ایشان بهترین آزاده ویرو که بیش از پیل دارد سخم و نیرو کنون عمرم به پاییزان رسیده است بخار نیکویی از من رمیده است میان ناز و کام و شادمانی بسا رویا که از من رفت آبش بسا چشما که از من رفت خوابش اگر بگزشتمی یک روز در کوی بودی آن کوی تا سالی سمن بود چو بشنیدین سخن موبت منیکان بدو گفت ای سخنگو ماه تابان تو در پیری بدینسان دلستانی، چگونه بوده ای روز جوانی؟ کنون گر تو نباشی جفت و یارم، نیارایی به شادی روزگارم، تخم خیش یک دختر بمنده، به کامت دل سنوبر با سمنده. چو یابم آفتاب مهربانی، نخواهم آفتاب آسمانی. به پاسخ گفت شهرو شهر یارا ز دامادیت بهتر چیست مارا مرا اگر بودین در پرد دختر کنون روشن شدی کارم ز اختر نزادم تا کنون دختر وزین پس اگر زایم توی داماد من بس تو شهرو خورد پیش شاه سوگند بدین پیمان دل شهگشت خورسند سخن گفتن از این پیمان فراوان به هم دادند هر دو دست پیمان که شهرو گر یکی دختر بزاید به گیتی جز شنشه را نشاید سالها شهرو را دختری آمد که ویسش نام نهادند او را به دایگان سپردند و برای پروردنش به سرزمین خوزان بردند رامین هم پسری بود که دایگان در همانجا جامی پروردند و این دنوباوه دوران کودکی را در باقهای خوزان در کنار یکدیگر سپری سپدی کردند بر این پیمان فراوان سال بگذشت سیدلها یاد این احوال بگذشت درخت خشک بوده تر شد از سر گل صدبرگ و نسرین آمدش بر یکی دختر که چون آمد ز مادر شب تاریک را بزدود چون خر همه در روی او خیره بماندند به نام او را خجسته ویس خواندند همان ساعت که از مادر فروزاد مرو را مادرش با دایگان داد به خوزان برد او را دایگانش که آنجا بود جای و خانمانش چو قامت برکشید آن سروازاد که بودش تنز سیم و دلز پولاد خرد در روی او خیره بماندی ندانستی که آن بطرا چه خواندی گهی گفتی که این باغ بهار است که در ویلالهای آب آبدار است گهی گفتی که این باغ بهشت است که یزدانش زنور خود سرشته است. تنش آب است و شیر و می و همیدون انگبین استان لبانش. تو گفتی فتنه را کردن صورت بدان تا دل کند از خلق غارت به بود رامین هم به خوزان همیدون دایگان برجان شلرزان به هم بودند آنجا ویس و رامین چو در یک باغ آزرگون و نسرین به هم رستند آنجا دو نیازی. به هم بودند روز و شب به بازی چه سالی ده بمان دستند نازان پس آنگه رام بردن زی که دانست و کرا آمد گمانی که حكم هر دو چون است آسمانی Chalom خاند کسی این داستان را بداند ای پای این جهان را نباید سرزنش کردن به دیشان که راه حکم یزدان بست نتواند چندی که گذشت پرستاران به شهرو نوشتند تا دخترش ویس را که روزگار کودکی را به سر آورده و دلارایی بسی باگشته است نزد خود فراخاند شهرو از این مژده شادمان شد و کسانی را با مهدهای آراسته به آوردن ویس فرستاد چو قد ویس بوتپیکر چنان شد که هم بالای سر به بوستان شد چود آگنده بلورین بازوانش چو یازنده کمند گیسوانش پراکنده شده در شهر نامش زدایه نامی شد نزد مامش چو این نامه به خانی هر چه زودتر بکن تدبیر شهرارای دختر آمد نامه دایه به شهرو به نامه در سخنها دید نیکو آنگه چون بود شاهان آیین فرستادش فراوان مهد زرین شدند از راه سوی ویس شادان ز خوزان آوریدندش به همدان چونان آراست آن ماه زمین را که مانین صورت ارجنگ چین را شهرو بران شد که ویس را همسری با فر و فرهنگ بیابد و چون کسی را سزاوار او نیافت ویرو را به دین مقصود برگزید. شما مادر دید ویس دلستان را بگونه خار کرده گلستان را به دو گفت ای همه خوبی و فرهنگ جهان را از تو پیرایست و اورنگ تو را خسرو پدر بانوت مادر ندانم در خورت شویی به کشور چو در گیتی تو را همسر ندانم بنا همسر دادن چون توانم تو او را جفت باش و دیده بفروز و از این پیوند فرخ کن مرا روز چو بشید این سخن ز مادر شد از بس شرم رویش چون موسفر به جنبیدش به دلبر مهربانی نمود از خاموشی همداستانی به رنگی می شدی هر دم ازارش به رو افتاده زلف تابدارش بدانست از دلش مادر همانگاه که آمد دخترش را خاموشی را بیوان کیانی رفت شهرو گرفته دست ویس و دست ویرو پس آنگه گفت با هر دو گرامی شما را باد ناز و کامرانی بمانیدن در این پیوند جاوید فروزنده به هم چون ماه و خورشید نگاه گرد راه به آسمان برخاست و گروهی سوار دلاورد که در پیشا پیش زرد برادر شاه موبد اصمی میتاخت به قصر شهرو رسیدند زرد نامه شاه موبد را که از مر فرستاده بود به شهرو داد شاه در نامش از پیمانها که رفته بود سخن یاد کرده و از موعد وسطت پرسش نموده بود چوبت فرجام خواهد بود یکی کار هم از آغاز او آید پدیدار چه خواهد بود سال بد به کیهان پدید آید خشکی در زمستان همیدون کار آن ماه دلفروز پدید آورد ناخوبی همان روز کجا چون آفرین برخاند شهرو نهادش دست او در دست ویرو همی کردند ساز میهمانی در آن ایوان و کاخ خسرووانی زراهندر پدید آمد سواری چو کوه توند زیرش راهواری سیاه است و کبودش جامه و زین سوارش را همیدون جامه چونین بدینسان اینسان اسب و ساز و جامه مرد چون فر کبود و نام او زرد رسول شاه و دستور و برادر همو و هم نوندش کوه پیکر به دستندر گرفته نامه شاه زبویش انبرین گشته همه راه تو زرد آمد سوی درگاه ویرو به پشت عهد شد تا پیش شهرو نمازش برد و پوزش خواست بسیار چه پیشت آمدم بر پشت رهبار مرا فرمان چنان آمد زخسرو که روز و شب میاسای و همیرو همی تا باز مروعی از این راه، نیاسایی زرفتن گاه و بیگاه. براه اندر نخسبی نه نشینی، ز پشت اسب شهرو را ببینی. رسانی نامه چون پاسخ بیابی، انان بارس سوی مرو تابی، پذیرش های او کردش همه یاد، پس پسانگه نامه بدو داد. کجا در نامه بسیاری سخن بود. همان نوکرد پیمان که بود. من از تو راستی خواهم که جویی. همیشه راستی ورزی و گویی. تو خود دانی که ما با هم چه گفتیم. به پیمان دست هم را چون گرفتیم. به مهر و دوستی پیوند کردیم و از اون پس هر دو آن سوگند خردیم. تو دخت خود به من آنگاه دادی که بعد از دیرگه او را بزادی چون من بودم تو را شایسته داماد به بخت من خدا این دخترت داد کنون کن ماه را یزدان بهمن داد نخواهم کو در ماه آباد زنان نازک دلند و سست رایند به هر خو چون براریشان برایند گرچه ویسه بی آهو و پاک است مرا زین روی دل اندیشناک است مدار او را به بوم ماه آباد سوی مروش گسی کن با دل شاد مبر اندوز وحر زر و گوهر که مارا او همی باید نزیور مرا پیرایه و زیور بسی هست سزا ترزو به گنج من کسی هست بدارم نیز ویرو را چو فرزند کنم با ویز تخم خیش پیوند چنان نامی کنم آن خاندان را نامش یاد باشد جاودان را چنامه خواند و این گفتار بشنید چنامه زین به خود شهرو بپیچید ز شرم شاه گشت آزرده خیش دلش بیچاره شد از چرده خیش